احساس واکنش بدن به کنش ذهن درباره احساسات و عواطف چه میگویید من بیشتر گرفتار احساسات و عواطف خود هستم تا ذهن خود ذهن به آن معنایی که من آن را به کار میبرم فقط فکر نیست ذهن شامل احساسات و عواطف تو و نیز تمامی الگوهای واکنشی عاطفی ذهنی تو نیز می شود احساسات در نقطه تلاقی ذهن و بدن به وجود می آیند. احساسات واکنش بدن تو به کنش ذهن توست یا به تعبیری دیگر انعکاس ذهن تو در بدن توست. برای مثال یک فکر تهاجمی یا خصومت‌آمیز انرژی تقویت شده‌ای را در بدن به وجود می‌آورد که ما آن را خشم می‌نامیم. بدن آماده جنگیدن می‌شود. فکر اینکه تو به لحاظ فیزیکی یا روانی مورد حمله واقع شده ای باعث می شود که بدن تو واکنشی نشان دهد. این واکنش صورت فیزیکی چیزی است که ما آن را ترس می نامیم. تحقیقات نشان میدهد که احساسات و عواطف قوی موجب تغییرات بیوشیمی در بدن می شود. این تغییرات بیوشیمیایی موجب می شود که ما احساسات و عواطفمان را در صورت مادی و فیزیکی مشاهده کنیم. البته تو همواره نسبت به الگوهای فکری خود آگاهی نداری. تنها با مشاهده احساسات و عواطف خود می توانی به الگوهای فکری خود پی ببری. هرچه بیشتر با فکر خود خوش آمدن ها یا خوش نیامدن ها،, قضاوت ها و تفثیر یکی شبی که همه که از حضور کمرنگ تو به عنوان تماشاگر آگاهی است انرژی عاطفی تو شدیدتر خواهد شد چه آگاه باشی چه نباشی؟ اگر نمی توانی عواطف خود را احساس کنی اگر ارتباط تو با عواطفت قطع شده است نگران نباش. می توانی آنها را به طور خالص در سطح کاملا مشهود بدن خیش تجربه کنی آنها خود را به صورت مشکلات بدنی یا بیماری ها نشان می دهند. در سالهای اخیر مطالب بسیاری درباره این موضوع نوشته شده است بنابراین احتیاجی به تکرار آنها نمی بینم یک الگوی یا عاطفی گاهی خود را در حادثه آشکار می کند که برای تو اتفاق میافتد برای مثال آدم‌هایی که بار سنگینی از خشم را در درون خیش حمل می کنند و از این موضوع آگاهی ندارند بیشتر در معرض حمله بیدلیل لفظی یا فیزیکی آدم های خشمگین دیگر هستند خشم شدید آنها با خشم نهفته دیگران برخورد می کند و بیدار می شود. اگر برای حس کردن عواطف خود با دشواری مواجه هستی توجه خود را به میدان انرژی بدن خیش معطوف کن بدن خود را از درون احساس کن احساس کردن بدن از درون تو را در تماس با عواطفت قرار میدهد. شما میگویید که عاطفه انعکاس ذهن در بدن ماست اما گاهی بین این دو نزاع در می ذهن میگوید نه در حالی که می میگوید آری یا بالعکس اگر واقعا خواهی ذهن خود را بشناسی بدن تو تصویری حقیقی از آن ارائه میدهد. بنابراین عواطف خود را تماشا کن به تعبیر دیگر آنها را در بدن خود احساس کن اگر نزاعی آشکار بین این دو وجود داشته باشد ذهن است که دروغ است اما احساس دروغ نیست منظورم این نیست که احساس خیشتن حقیقی توست بلکه منظورم این است که احساس میتواند به طور نسبی وضعیت فعلی ذهن تو را نشان بدهد نزاع بین افکاری که در سطح میچرخند و روند ناآگاهانه ذهنی است شاید ممکن است در حال حاضر توان کشیدن ذهن ناخداگاه خود به سطح ذهن خداگاهت و تبدیل آنها به افکار را نداشته باشی. اما می توانی انعکاس آنها را به شکل عواطف در بدن خیش مشاهده کنی. بیتردید تا این اندازه می توانی بفهمی مشاهده این گونه یک عاطفه اساسا شبیه گوش دادن یا تماشای فکر است با این تفاوت که فکر در سر توست و عاطفه انصری به شدت مادی دارد و اساساً در بدن احساس می شود بنابراین می توانی بگذاری عاطفه بدون آن که توسط ذهن کنترل شود فقط باشد آنگاه تو دیگر حالتهای عاطفی و احساسات خود نیستی بلکه تماشاگر حالتهای عاطفی و احساسات خود هستی، تو حضوری هستی که میبینی، اگر این تماشاگری را تمرین کنی، همه آن چیزهایی که به طور ناخداگاه در تو هستند، از تاریکی وجودت بیرون می آیند و در آفتاب آگاهی تو پهن می شوند. بنابراین این تماشای عواطف و احساساتمان مانند تماشای فکرهایمان مهمند؟ مدام از خود بپرس در این لحظه در ذهن من چه می‌گذرد این پرسش تو را در مسیری درست قرار می‌دهد اما تحلیل و تجزیه نکن فقط تماشا کن توجه خود را به درون معطوف کن انرژی عواطف خود را احساس کن اگر عاطفهای وجود ندارد توجه خود را به اعماق میدان انرژی بدن خود ببر آنجا دری را خواهی یافت که رو به هستی باز می شود. عواطف و احساسات چیزی نیستند مگر الگوهای فکری تقویت شده و گسترش یافته از آنجا که این الگوها مدام تقویت شوند و نیرو میگیرند در ابتدا حضور کامل پیدا کردن و تماشا کردن آنها دشوار است الگوهای فکری میخواهند بر تو چیره شوند و معمولا موفق شوند مگر آنکه حضور خویش را تقویت کرده باشی اگر به دلیل حضور نداشتن به یکی انگاری ناآگاهانی خود با عواطف و احساساتت کشانده شوی عواطف و احساسات به طور موقت جای تو می نشینند. اغلب بین فکر و عواطف تو دور باطلی برقرار می شود آنها یکدیگر را تغذیه می کنند الگوهای فکری انعکاسی اقراغامیز پیدا می کنند و خود را در صورت احساسات یا عواطف جلوگر می سازند از طرفی بسامد پرنوسان عواطف تو نیز مدام به الگوهای فکری تو قضا می رسانند و آنها را زنده نگه می دارند. با انگشت گذاشتن ذهنی روی وضعیت، حادثه و یا شخصی که علت ایجاد عاطفه یا احساس فرض می شود، فکر به عاطفه قضا میرساند که به نوبه خود موجب تقویت الگوی فکری می شود. اصاسا همه ی عواطف و احساسات صورت تغییر یافته یک عاطفه، یا احساس اولیه نامشخص بیشتر نیستند احساسی که در ناآگاهی ریشه دارد ناآگاهی نسبت به اینکه حقیقت ورای نام و شکل تو کدام است به دلیل نامشخص بودن ماهیت این احساس پیدا کردن اسمی برای آن دشوار است ترس کمی به این احساس نزدیک است اما صرف نظر از احساس مدام تهدید احساس مذکور در برگیرنده حسی از کنار بودن و نقص نیز هست شاید بهترم باشد که اصطلاحی را به کار ببریم که به اندازه همان احساس اولیه نامشخص باشد و آن را درد و رنج بنامیم یکی از وزیفه های مهم ذهن آن است که با درد های عاطفی بجنگد و آنها را برطرف کند این وظیفه توجیه کننده فعالیت های بیوقفه ذهن است. اما تنها کاری که از عهده ذهن برمیآید سرپوش گذاشتن بر روی این درد هاست در واقع ذهن هرچه بیشتر میکوشد تا از این دردها خلاص شود دردها را افزایش میدهد. ذهن هرگز نمیتواند برای رفع ناراحتی عاطفی یا روحی چارهای پیدا کند. ذهن به تو هم اجازه نمی دهد تا برای این مشکل چارهای پیدا کنی زیرا ذهن انصر اصلی مشکل توست. تصور کن که رئیس پلیس در صدد است تا عامل آتش سوزی جای مهمی را پیدا کند و از طرفی عامل آتش سوزی خود رئیس پلیس باشد. تو از ناراحتی و ها رنج های عاطفی خود رها نمیشوی مگر حساب خیشتن خیش را از ذهن خیش جدا کنی، یعنی خود را با ذهن خود که همان نفس است یکی نپنداری. بدین سان ناگهان ذهن از سریر قدرت پایین میافتد و هستی به عنوان ذات حقیقی تو آشکار می شود. میخواستم بپرسم نظرتان درباره احساسات مثبت مانند عشق و شادمانی چیست؟ عشق و شادمانی از حالت طبیعی احساس یگانگی تو با هستی جدا نیستند. عشق و شادمانی و یا احساس آرامش ژرف فقط هنگامی حاصل می‌شوند که شکافی در جریان فکر ایجاد شود. برای بسیاری از آدمها شکافی از این دست به ندرت و یا تصادفی اتفاق میافتد در لحظه هایی که زبان ذهن بند می آید. برای مثال، هنگامی که تو در برابر شکوه زیبایی چیزی یا کسی در میمانی یا هنگامی که مشغول تلاش و تقلای سخت بدنی هستی یا حتی زمانی که با خطری بزرگ روبرو می شوی در این لحظه ها ناگهان سکونی جرف و سکوتی جرف تمام درون تو را سرشار میکند در این سکون و سکوت جرف شادمانی هست عشق هست آرامش هست این لحظه ها معمولا کوتاهند زیرا ذهن به سرعت پادرمیانی میکند و سر و صدا راه میاندازد همان چیزی که من را فکر مینامیم عشق شادمانی و آرامش هرگز تحقق نمیابند مگر آنکه تو خود را از سلطه ذهن رها کرده باشی اما منظور من از عواطف و احساسات شامل عشق و شادمانی و آرامش شود اینها ورای عواطف و احساسات در سطحی عمیقتر قرار دارند بنابراین پیش از آنکه بتوانی آنچه که ورای عواطف و احساسات قرار دارد تجربه کنی لازم است نسبت به عواطف خود کاملا آگاه بشوی و بتوانی آنها را احساس کنی منظور من از عواطف و احساسات آن چیزهایی است که مایه آشفتگی و بیقراری میشوند. عشق شادمانی و آرامش صفاتای ژرف هستیاند. اینها ابعاد مرتبه احساس پیوند درونی با هستیاند. به همین دلیل اینها ضدی ندارند زیرا از فراسوی ذهن میآیند اما عواطف و احساسات چون زائیده ذهن سنبیگرا یا دوگان پندارند دست خوش قانون ازداد هستند یعنی تو نمیتوانی خوب را داشته باشی بدون آن که بد وجود داشته باشد بنابراین این هنگامی که خوب را میخواهی بد را نیست با آن به سوی خود میکشیم بنابراین در وضعیت روشن ناشدگی و یا یکی انگاری خود با ذهن آنچه شادمانی نامیده می شود، چیزی نیست مگر لذت ناپایدار و کوتاه مدت در چرخی مدام چرخنده لذت درد. لذت همیشه از چیزی بیرون از تو حاصل میآید اما شادمانی از درون تو می آنچه امروز موجب لذت تو می شود، فردا دوچار رنج خواهد کرد تو را. آنچه معمولاً عشق نامیده می شود، ممکن است برای مدتی لذت بخش یا هیجانانگیز باشد اما این عشق اعتیاد است نیاز است و میتواند در یک چشم برهم زدن به ضد زد خود تبدیل شود. بسیاری از روابط عاشقانه با گذشتن شادی اولیه به چیزی تبدیل شدند که مدام بین عشق و نفرت یا جاذبه و دافعه در رفت آمد است. عشق حقیقی تو را به رنج نمی اندازد. چگونه ممکن است؟ عشق حقیقی ناگهان به نفرت تبدیل نمی شود. شادمانی حقیقی ناگهان به درد و رنج تبدیل نمی شود. همانطور که گفتم حتی پیش از روشن شدگی تو یعنی پیش از رهایی تو از ذهن ممکن است بارغهای از عشق و شادمانی و آرامش ژرف در اون را تجربه کنی اینها ابعاد خیشتن حقیقی تو هند خیشتنی که زیر آوار ذهن مدفون شده است حتی در یک رابطه معتادانه طبیعی لحظه های وجود دارد که میتوانی حضور چیزی حقیقی و سالم را احساس کنی اما این لحظه ها گذرایند زیرا ذهن فوراً مداخله میکند و این لحظه ها را میپوشاند به این میماند که چیزی گرانبها را گم کنی و یا ذهن تو تو را متقاعد کند که آن چیز را نداشته ای و فقط گمان میکنی که چنان چیزی را داشته ای حقیقت آن است که داشتن آن چیز گرامبه خیال و رؤیا نبوده است و تو نمیتوانی آن را گم کنی زیرا چنان چیزی پاره از وجود طبیعی و حقیقی توست چیزی که توسط ذهن مدفون می شود اما هرگز نمی حتی زمانی که آسمان به شدت است خورشید گم نشده است خورشید هنوز آنجاست آن سوی عبرها بودا میگوید درد و رنج زاییده خواهش و آرزویند. بنابراین برای رهایی از درد و رنج باید بندهای خواهش و آرزو را بگسلیم همه تمناهای ما زاده ذهن مایند ذهنی که در میان چیزهای بیرونی به دنبال نجات و کامیابی می‌گردد همین ذهن است که آینده را جایگزین شادمانی حضور در لحظه اکنون می کند. تا وقتی که من ذهن خود هستم، نمیتوانم خود را از تمناها، نیازها، وابستگیها و دلزدگیها جدا کنم. زیرا بدون اینها دیگر من وجود ندارد. مگر دانهی که هنوز جوانه نزده است. در این حالت یگانگی با ذهن حتی میل من برای رهایی و روشن شدگی نیز چیزی نیست مگر تمنایی دیگر برای نجات یا کامل شدن در آینده بنابراین به دنبال رهایی از تمناها و خواهشها و نیز دستیابی به روشن شدگی نباش در لحظه اکنون حاضر باش باش به عنوان تماشاگر ذهن خود به جای نقل قول کردن از بودا بودا باش بیدار باش بشریت از زمانی که از آغوش لطف حضور در لحظه حال به میان زمان و ذهن فرو افتاد همیشه در چنگ درد و رنج گرفتار بوده است او کل را فراموش کرد در نتیجه حقیقت خیش را فراموش کرد از آن زمان به بعد آدمها خود را پاره‌های جدا و بی‌معنا در جهانی بیگانه یافتند. آنها بین خود و همه چیز و همه کس ربط و اتصالی نمی‌بینند. آنها از خدا جدا افتادند. تا وقتی که خود را با ذهن خود یکی می‌دانی، یعنی تا وقتی که آگاهی ژرف معنوی نداری، درد می‌کشی و رنج می‌بری. در اینجا منظورم درد و رنج عاطفی و روحی است درد و رنجی که علت بسیاری از بیماری های روحی و جسمی ما نیز هست ناخشنودی، نفرت دلسوزی به حال خود احساس گناه خشم افسردگی حسادت و غیره حتی تحریک شدنهای جزئی نیز شکلهای گوناگون درد و رنجند هر لذتی در دل خود رنجی را پنهان کرده است رنج ضد اجتناب ناپذیر لذت است که خود را در زمان نشان می دهد. همه آنهایی که مواد مخدر مصرف کردند تا حال کنند می دانند که سرانجام حالشان گرفته شده است و لذتشان به درد و رنج تبدیل شده است. خیلیها میدانند که چگونه رابطهای لذت بخش به درد سر و رنج تبدیل شده است. اگر از بالا نگاه کنیم، هر دو قطب منفی و مثبت در روی یک سکند، هست. که همان رنج و درد است این رنج و درد حاصل آگاهی نفسانی یکی انگاری با ذهن است. درد و رنج تو دو ساعت دارد. رنج و دردی که همکنون آن را ایجاد می کنی و رنج و دردی که از گذشته برداشته ای و در ذهن و بدن خود زنده نگه داشته ای. توقف رنجا در لحظه حال و محو رنجهای گذشته چیزی است که اکنون میخواهم در باره آن با تو سخن بگویم.